هر نام تعویذ یا می میداند و حدیثی آورده‌اند که جمله اینکه که پیامبر فرمودند که هر کسی تمیمه تعویذ به خودش آویزان کند وکالتش به خودش سپرده میشه روایت احمد صفحه فلان در صورتی که علما بزرگان ما خود تعویذ دارید لطفا توضیح فرمایید چون که ما چون شاهد از بین بدبینی جوانان است از علما بزرگان درمی‌شه وا طرز میگن که امام ابونی گفت هر اشتباه کردن قربون راحت کنید درست گفت حضرت ایمان، هر کجا اشتبا کر کاش و رحاب بکنی، اما تو هم زحمت بکیش برو تقریبا پونسد هزار حدیث بررسی بکن، ببین حالا کجا اشتبا گفته. تو باید کل احادیث رسی کنی، کل اقوال صحابه رسی کنی، قضاوه و خطاوه صحابه رسی کنی، حالا شاید جای تو رسید جایدی گو اسدار کرده، بعد همین اینها رو بدونید، اینها رو بررسی کنید، بعد بی که ما مدیفش اشتباه گفته یا نگفته. اگر بعد اشتباه بود حالا رهاش کو بزن به دیوان این خود ایمان گفته. اما باید در اینکه ایمان گفت هرگاه من خلاف هدیز رفتم قبول بزن به وای. یعنی من تا هر امکان خلاف ودی هیچی نگفتم. اعتماد کامل من هیچی نگفته خلاف. هرچی گفته از هدیز بودم. بعضیم شو باز نگران نکن. از دمان اما اونی فتحالا چارده قرن رد شده هر قرنی هم سد سال هست و این در حد داری مذهب که حالا در دنیا نظیب یک میلیارد داره از این مذهب اتباه می کنم یک میلیارد انسان که حداقل ما بگیریم بگیریم ده میلیون آلین در ها وجود داره اونها گذاشتن هیچی غیر از اینها مذهب احناف به چهار چند نم مشتهد داره مشتهد مطلق. مجتهد فی المذهب مجتهد فی المظاهی فی المسائل ترجیح مسائل اصحاب و طور همین ها رد شدن و کل مجتهدین برای این کار کردند اینجوری نیست فکر کل حال آمده رفت محدثین آمدید مجتهدین آمدید علماء آمدید و هر روز روی فیغ کار کردند اینا تخریش کردند برایمان تو چیزی نگذاشتم بریم حالا دنبال نقطه نقطه های اونها بیگردن. الله نمی از این جایی. هرچی بوده خودش مشخص کردن جای فتاوا بر قول اونها نبودی. اگر هم شما پیدا کردید، میتونید در هایی کنی عمل نکنیم. اما این تAVIS، آیا تعویض که, علا که میگن شرکه؟ حالا فتاواایی که اینها میگن شرکه؟ حالا دو کتاب من هاول میدم. اول بگویید که حافظ ادبیه هم مشرکه تو نشان هم میگن جایزه در مجموعه فتاوا. بعدی سی سایق هم مشکی. کتابی فقه و داره. داخل سراوان هنگ تاسو به فارسی ترجمه شده در کتاب جلد اولش نگاه کن جلد اول عربی است اونجا هم باب تمائم آورده و تعلیق تا ان و آویزن کردن آورده و سی سابقه از همون حضراتی شیر بگید که سی سابق هم مشرک شد اگه یاد هم دوست دارید که بگید بگی اما احمد ابن حنبل هم مشرک شد چون اما احمد ابن حنبل هم معتقد که جایزه اگر جلوتر برید بگی مجاهید هموشکه تابعی بزرگوا شاگرد عبد الله بن اباس چون عیسا هم واعتقیده دروتر اگر فتوای روتر بگوزاریید عبد الله بن اباس همو شیخ بکونی عایشه رو همو شیخ بکونی ام سلمی رو همو شیخ بکونی چون همه دارا میگن جایزه با دروتر اگر بخایبری علی حدیث صحیح مسلم زیر سوال بری تو عیسا هم گفته که جایزه اینا همه داخل کتاب ها اومدان اما این جوری نیز بحث که راحت فتوای بده مشریک حالا احادیث اومدن دنو احادیث اومدن یک اومده من علق تمیمه تمیمه چرا میگن؟ تمیمه اون مهره های است این پیرزاله ها بپرسید مهره های بزرگی بودن اونا هایی که حالا بیماری های دردگلو گرفتار میشدن آویزان میکردن تا بیماریش برطرح میشه این شرکه کسی بگه این مهره من شفا داده خود تمیمه در کتابی لسان العرب ابن منزور افریقی اونجا آمده که هزارات المهرهای هستن که اینها رو استفاده میکردن چرا مغالطه برای مردم میکنید شما اگر جله تا بریش و داری به بسیار عظیمی مبتلا میشی تون داغله حدیث اومده ان الرقا و التما و طول شرکم رقا می رو میگن رقا رقیه رو میگن رقیه دو میگن شما وقتی ما من میگی رقا نیست میگی که نه اینجا رقا یعنی دام داخل صحیح بخاری کتاب طب رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی رقیه بھی خوندان حالا داخل صحیح بخاری اومده رقیۃ العین چشم زخم روقیہ میکردم یا رقیہ از خود عقرب روقیہ میخواندان چندین جا از مار روقیہ میخواندان داخل بخاری اومده در حال اون حدیث این ان و والتمائم شرکون روقیہ هم شرک اینجا تمائم شرک پس دام کردن شرک شد چه میگی حالا میتونی حرف بزنید کافر میشید اینجوری نیست از اونجا اومده روقی شرکی اونجا اون رقیه کلمات شرکی مهرها هستن این رقیه کامده این رقیه فرق میکنه با اونها اینا چیزهایی که جایزان صحابه کرام عبدالله ابن امر ابن اس رضی الله تعالی عنہ داخل کتاب فقه و سنت یه سابق آورده و حتی حافظ ابن تیمیه آورده می فرمائند موعوذتینو بنویشت و در گلوی فرزندانش آویزان میکرد داخل صحیف مسلم امام النبی مکرر اسلام الله که من استطاع منکو انجن من کنجن فخا ہو فلیفعل شخصی آمو گفت یا رسول الله من قبل از اسلام رقی می خوندم دم میکردم ای منتری می خواندم بعضی خود میشد علش ما بھیج جائز نیستم فرمودن آرزو رز علی رقاکم بیار ببینا وقتی که آوردن اینار می خونه لا بس معلم ی کوون فی معلم ی کوون تا زمانی کلمه شرک به کار اشکال اسکل نداره حالا سوال اینجا ای این روحیه که هل نوشته میشه تأویز، این یک آین نوشته میشه، این سوره نوشته میشه. آیا سواری می‌کند؟ اگر کسی سور نوشت آویزان کرد، مشک میشه، با نوشتن قرآن مشک میشه، خودارق ایمان شما داری قرآن می اگر قرآن نوشت آویزان کرد، یه حدیث بود آویزان کرد، آیا با نوشتن مشک میشه؟ شما همیگی دم جائزه؟ تأویز جائز نیست. در حالی که تأویز در از همون مکتوب دم هست. اونجا انجام انجا مکتوب انجا مكتوبه بین مالفوز و مكتوبه حالا اگر شرک چون جمله یکی هست اگر شرک با مالفوزم شرک باشه به صورتی که گفتن کلمه شرک با زبان جایز نیست نوشتن کلمه شرک انجام جائز نیست یک ملفوظ هست یک مكتوب هست بین مالفوز و مكتوبه بخوای فرقه ای بیشی اونجا خیلی خطرناکیه مان دیگه ملخوظ جایز مکتوب شرک حالا اگر کسی با زبان کلمه شرک به کار نبرد اما نوشت مسلمان این یا کافر میشه کافر میشه پس این جوری فتوا ندیدی دیدن الا فتوای میدن کل دن کله پر کردن با دروغای خودشون ال شرک شرک شرکی این احادیث بیخان خان چه کنه احادیث بھی این صورت اومده اگر کسی از آیه قرآن یا ادعیه معصوره دعاهایی در احادیث اومدن استفاده کرد کلمه شرک استفاده نکرد کلمه شرک استفاده نکرد کلمات درست استفاده کرد این شرکی نیست این جایزه حتی صحابه کرام دنگ کردن داخل صحیح بخاری در دو جا سی بخاری در چار جا بخاری آمده. یک صحابی دکتاب الاجارات اومده دکتاب حفظ علی آمده. اومده دکتاب طب آمده. یک صحابی یک رو دنگ کرد مار گزیده بوده از او سی بوسه انگیره تا از یک دم کرد برای مار سی تا گوسفند گیره بری صحیح بخاری کتاب رجاره صحیح بخاری فضائل و قرآن صحیح بخاری کتاب و طب بری نگاه میکنید این عادیس در حواله میدن اونجا وجود دارم بس وقتی که صحابه کرام اون گوسفندارو گرفتند گفتو حالا ما نمی تو قرآن خاندی قرآن فروختی ما گیرین رفت پیش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم نفر بودن 3 گوسفن بودم فرام بودن که اینا حق ما اخستون بهی کتاب الله بهتر چیزی گرفتی همی قرآن خوندی گرفتی شما وزر بولی بسا همین به من این حصه میدید حالا میگه به من هم بدی من هم بخورم یعنی پاک حلالی هی باشکل نداره چرا؟ این یک نار راه علاجه اگر این شرکه چرا بگن شرکه؟ توی شما میگه ایمان شفا میده قرآن از قرآن شفا میده شفا الله خودش میگه من شفا نازل کردم اگر اینجوری باشه پس رفتن به دکتر هم که تو فکر کرد این دارو من جا داد این دارو بیماری قلبی منو خوب کرد پس شما هم وش شک میشی رفتن به دکتر هم جایز نمیشه پس فتوا ندین توی کار های داری فتوا میدی خطرناک میشن آینده خودتان به مخاطره میافتید زود هم جبگیر نباشی مسائل جای میشناوید حتی بعضی از سایت ها را یهودیت مدیریت میکنن حتی صاد هست که دنیا اسلام سی درست کرده قبلا حالا بوده این حالا هست نیست. مدیر اونها یهودی ها بودن مطالب اسلامی را میگذاشت دلابله اونها اعتراض بر اسلام طرح میکردن حالا از اینها نمیشه اعتمالبری از ولما مستحیلی پرسید و دلالو بگیرید بعد حالا حرف بزنه زود ناراحت هم نشید دودم مردم نلب فلان مولوی میگه مول محمد عمر فلان ختاب نوشته مرد حسابی تو به اندازه اون می اصلا میرسید. مولی محمد عمری که چندین نفر رو مسلمان کرده من کل منطقه رو از بدعات و کفر و شرک از این گاره های که بلوچی میگن سکه ها اونو پاک کرد اونها رو مسلمان کرده صده نفر رو مسلمان کرده تفسیل اگه شما تا پاین عمرتون بخونی اون نمیفهمی اون داره میگی بول محمد عمری اللہ این کار رو کرده رو علما نقطه نگذاری گوشت علما مسموم اگر این گوشت خوردی غیبت تو نهار کردی مسموم میشی و اگر مسموم شدی الله اینجوریش نیست که اصحال اس میشی اسهال نمیشی بیماری خطرناک انسان میگیره که خطر ایمان هم داره حل راحت راحت اعتراض نکنی الله برایش من در بر تفسیر آیه خوندم که الله رب العالمین آیه ناظر کرده الانو لا و شهید الله انا الله إلا و آل الامی علامات در شهاده مینن بر توییدباری الله رب العالمین رو در اونجا ذکر کردی راحت بر علما نقطه گرفتن و اطراز کردن این کار درست نید. ما هیچ اصطوادی نداریم، علمی ندارید، اما انشاءالله ادعا ادعا قدر بزرگ که از علامه های زمان هم ادعا ما بزرگتره، با ادعای میکنی بدون علمان چقدر آبم نه در هر سخن بحث کردن رواست، خطا از بزرگان گرفتن خطاست.